حکایت یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که سواری از در درآمد و بشارت داد که فلان قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر آمدند و سپاه و رعیت آن طرف به جملگی مطیع فرمان گشتند ملک نفسی سرد براورد و گفت، این مجد مرا نیست، دشمنانم راست، یعنی وارثان مملکت، بدین امید به سر شد دریغ، عمر عزیز، که آنچه در دلم است از درم فراز زاید، امید بسته برآمد ولی چه فایده، زانگ، امید نیست که عمر گذشته بازاید کوس رهلت بكوفت دست عجل ای دو چشمم وداع سر بکنید ای کف دست و ساعد و بازو همه تودیع یکدیگر بکنید بر من اوفتاده دشمن کام آخری دوستان گذر بکنید روزگارم بشد به نادانی، من نکردم شما حضرر بکنی.